حکایت مطابق این سخن پادشاهی را مهمی پیش آمد گفت اگر این حالت به مراد من برآید چندین درم هم زاهدان را چون حاجتش برآمد و تشویش خاطرش برفت وفای نظرش به وجود شرط لازم آمد یکی را از بندگان خاص کیسه‌ای درم داد تا سر بر زاهدان گویند غلامی آقل حشیار بود همه روز بگردید و شبانگه باز آمد و درمها بوسه داد و پیش ملک بنهاد و گفت زاهدان را چندان که گردیدم نیافتم گفت این چه حکایت است آنچه من دانم در این ملک چهارصد زاهد است گفت ای خداوند جهان، آنکه زاهد است، نمی ستاند، و آنکه می ستاند، زاهد نیست. ملک بخندید و ندیمان را گفت، چندان که مرا در حق خدا پرستان ارادت است و اقرار، من این شوخ دیده را اداوت است و انکار حق به جانب اوست زاهد که درم گرفت و دینار، زاهدتر از او یکی به دست دار.